عاش زایما تشاوا داره شما این مهم سلام علیکم الرحمن رحمتی برحمتی که یا رحمت باشندگی از شد در تعریب کلمات مرحوم شیخ اعلامی که بعد از شیخ آمدن این مبحث حجیت غث رو انصافا بحث های خوبی رو انجام دادن حالا خواهد موافق باشیم یا نباشیم زحمات زیادی کشیدن و دیروز متعرض کلمات بهتا وست میکنیم بهتا وست میکنیم بهتا وست میشه اصلا وست میکنیم جیش خلابی و دیروز متعرض کلمات مهموم محبر ایرابی حتیس الله و دماغم از این دغدغت نه از بعد از رو که یومده کردیم، ایشون یک مقدار حرام شیخ رو باور فرموده وجود مصاباته آن. و وجود مصابات و دو مره گرفتن اینکه موضوع از سرای خوبی مهم به صرف اراده در مرحله موضوع یه مرحبه هم عمل کردم مقدور این مطاقت رو این تصویر کردم که یه روز و این روز رو مطاقت از جهت زادیت زارد، كا، و تقریدت زادیت هم یه از است. در در تا چی بودن کارشفیه در در دو مرحل هست من متحرد به هم که من کردم در خوضای روان و سر اصول بود با سر من بردش شیخ مدرخ بود رو که را و مقدم ا عمل رو گفت منه نهی بکنه از احمنه رو این معنه از برای من ورده داشتم اون معنه چون ذاتی که بزن این بخص مفرح شاید آقاقه من هست مثلا کسی که بخص داره نه مرده بوشه خردوش هرامه میتونه شعره بشه که از نکن این سوال سورا من از کرده در کتاب رسول خرموزه اشتاد از اینوش نشاره بگیر و بعد نمازم از پسکوکتی مرموم که نمیشه بعد از مرموم شیخ هم این مسئله موضوع برنسی برمیرفت که آیا میشه یا نمیشه و نوستهی نشدن چیه این روزاره این بسمت کلوازه محفظه بعد از الله و سفر گیشون که من محبول نیست یعنی من نه از اعمال یاد بگر نکن این محبول نیست گیشون می فرمند نیمیشه یه حضار عبارتشو بخونیم چون این من معنیتشه الاسه به طریقیتی تکمینا معنیش این باشی که این تغییر نیست تکمینا طریق بسکار شد نیست خب این واضحه چنین آبیزایی می‌دانیم در اسلامیم که به آن پسندیده‌ام احتمالاً بالایی است. احتمال دوم به این معنی است که الان مسابقه‌ایی همون دوام مسابقه. اون مسابقه لازم نمی‌شود. یک شکایت جریم و مسابقه راه داده و مرده بولا مرحله مرده اخیره می برمان این هم دو جوره یه دفعه است به درمان مرحله اخیره هست اصطلاحیشان که ما استفرشن حمل کذاشتیم مقام به اینکسا اینم واضحه چون در ظرف اینکشاف واقع از یک طرف واقع که مونکشفه برای ما یعنی این واقع که وادت از هر آموزن دوشت ترگوشی که برای مونکشفه و از طرف دیگه در از فعلی هم مولا خواسته این همه چیزی نیسته تحقیقی باشه این خودش فعلی شده مولا از ما خواسته که به گوشت خرگوش رو نصلا مصرف نکنیم خب بعد از این مقدمات ما طبیعت هسته به حرکت ما حرکت اراده ما, حركت ما به همین صورت عمی ایرانی شده گوشت خرگوش هرام این حرومت هم فعیلی هست و فرصوی جانبی شهر بود خب آن نخواهی اجتناب بکنید لذای ایشان این حرکت قراری همتا دیروز توبیر داده شد که ایشان در حیوانات هم وجود دارید و نیمونه یک مرحله مرحله اول هم و همه نسبت به, به مرحله اولا این جمعه ما آزیان می نسته به این مرحله گولا نمیشه این نقطه رو اولیش آن شرم دارد تصیبیه این مرحله گولا چیه مرحله گولا این هست که بعد از این که ما فهمیدیم مولا گوشت خردوش رو حرام قرام داده ما بارد اراده ما رو سرم بکنیم باید رو سرمت بکنیم سر در این جهر در این جهرز گوشت خردوش اجتناب کنیم این نه این که حملت این سرف ارازه این که من مطیع امام را این موضوع بود این کار بوده پس که مجید قانونی گذاشه که بران کار اینجام بشه مثلا برای صافتن مثلا شیابان ها نفلی ده مثلا هم نفلی در شما مثلا بده من تا ایل فیدا کردم یقین ده بردم به این قوم اینجا عرض انسان حق می کنه گروه که یمین یعنی داری دوردن خواسته مجلس خواسته مبلغ حالا که یمین داری تو خود رو درازه. تو سرخی یعنی. سرخی یعنی این یعنی، سبب این جهت این هدف، تو حسن این حصفاقت بعد از یمین یعنی میان هر نمه ما آزیاد نمیزم از کردیم نمیزم شدیم از, میار. از میار. این نوصی خنیه حقاقی این حکم حقه چون من خیلی اونسه دار که اگر دماغیم جاییم رو نامشه بشه دقیقا درست زده رو نامشه اولا تو اون مسئله که عمل بود که مرحله اخیر سال همشن با رنگ کردیم در مرحلی عمل ممکن است با دیگر در احسان تأثیر بگذارن عمل نشید که در عمل اتمن خواهد شد این طور نیستن اما در این ای که حکمه هر به تغییرشون عمل خوبت می کنه لازمه این نوشه تحسین تحسین مراقب و پهبریه سرف اراده دن و تاره یعنی میگه تو اگر خواهی شهر برزه خود باشی همه انجام بذی منتظم بشی آنون کردن برای حوارز نفری درسو هم بذاری عقل میگه بهترین راز زندگی تو در این شهری همین دارد که این آنون منتظم مثلا ایشون تحبیرش اینه حکم الهر به تحسین سرفت اراده نهبر تا حالا ایشون اینجور نمیشن ما, ما, ما این رو میگیم ما که یقین پیدا کردیم که مجلس تصویر کرده که نفری ده که من حوارز بدن برای به اسطلاح ساختن راه هم با علم شما اعر رو حکم مطلب اول آزی ها رو نهر میگه ما باید تصمیح که این کار رو انجام بگید برای حسن جامعه برای علاقه جامعه برای که راحت نزیدی کنید. باید این کار رو اطاعت بکنید این رو ایشون تصمیم خمه اون اونجایی که در کرافی ایشان محل مناقشن این خمه عرب است یعنی از کجا مخواد رو در کراف ایشون خمه عرب این تحصیلی که برکا خواهد شد. اینه که آیا این حکم امن درستی محضر شما چون خواهد این نظام رو را اراده خود پول و خود ریمان تو خود صرف اون قوانیی که قرار دادن پشت. این درسته که بست نیست ای این این یا این حکم برای اداره که اگر شما این کار نکردی و از جامعه هم میخوره، هر که سزنه تو قانون شکنی بکنی جامعه این پس شما باید بنا بگیداری تصمیر بیگیری صرف ارازه به اراده رو برای انجام دادن این تکیر این یک نوعست او خورتونه هم یه اونقادا نه نقطه دو, دو در هر آزیاد که به نظر مرمو آزیاد این حجره اساسیه بسته اون دیر بنامون شهر اینه آیا این حکمه هر داده؟ تنجیبیست خود این خبی. که طور را تصمیم بگیر برای انجام دادن کار؟ آیا این حکم تنجیبیست یا تلیبی؟ همتی دیگر مرمو آزیاده که این در صورت قرد تنجیدیه یه منتظر چیدیم تا قصد آمدیم نموشون وقت برای این که مقابل شناخته بشه ایشون دنید دو تا مثال ها که با مجموعه کلامشان سه مورد مثال میدنم اونجا خدمه هست و اون خدمه یکی در جهانی که اون کاشق ما قاسر بسور داری مثل زن اگر از هم داشتید شب کاشه به ما خاصه به حکم عبد تنجیزی نیست عبدان بود میکنه یا حقوق تو این کار رو انجام بده بنابرای ازاد قانون رو انجام بده اما شون برای شما کنید که شابشتان نیست تعلیقی رو میکنه میگه اگر این زن مختبر شد اگر این مثلا شما از بول یک نظر اینه بهتر کردید اینه زن بهتر کردید که باید دهتوان ده بزید دیگه اگر این زنده درجه اعتبار اگر تحریه شد اون شما انجام بزنید صرف اراده بکنم که تحریه شما تسریم به انجام بکنم بگید یا تحریه دیگه روز وقت تحریه در احنای, احنای محقق شد در این این مطلب احبا مطلب دوم، اگر این اشماعی بود یک کسانی که امن ایجمال را رایدت اتامنه بوده اونا همی هم همینطور نقطی فرمین چون امن ایجمالی بر هر واقع به دو طرف سرد را و یک نقط ایبه توی این وجود داره این ایبه منشأ میشه که این حکمه از تندیزی نباشه با یعنی این یعنی اگر شاه اجازه ندار انجام اگر بشاره این چه پس در حکمه این هم این حکمه همه به اراده رو اینجا هم به نظر تقیدی این اگر بازی شدید که این باب این و هر رو میکنه این حجیت زن در این صورت این حجیت این رو رو بکن به هر حال تحلیلیه از توی شون ممکن است ممکن است ما بگیم با کش تنجیدیه در ساته ممکن است این مجموعی هم تنجیدیه شونگه امان داره که احتمال داره در اون جا باشه روشنی اما اگر قرصه تا کردیم یقین که قانون به شما روزه ده تا هم برای همارز در اجاز تصمیم گیری شما به اینکه این حکم بر شما تمام شد منحجز شد تنجز فیدا کرد با تنجز رو بود این رویه برای اجرای قانون این حکم هم بگیری مطاقه تا بر چی بیمید در صورتی که اون کاشه تام باشه تره دیگه ازادی باشه به یا زادش باشه دیگه منتظر و حالتی نیست پس هر اساس با زیر بنای در کلمات محبه بگراری در باب به اطلاح منجز بودن هست. این هست که این حقیق محبه در صورت از حقیق محبه حقیق محبه لذا خوب دقت بکنید مثلا شما خواهد ما امکانیگی و لذا به خاطر این جهت امکان نداره تحسیل سده اینم هو این من جهت مناقاتی اید حکم اله احل و از تنجیدی من کبارم ارسم در وقت عربی صفت مزاق بعد از مزاقم علی میان این تنجیدی صفت اله احل این صفت حکم ما بردی خیلی این حبارت به خواستی ترجمه کنیم با اینجور دیم حکم تنجیدی احل این اسمش اینجور باید باشی تنجیزی ما در زبان فارسی صفت مضاف رو بعد از قبل از مضافانه الهی میاریم حکم تنجیزی هر به وجود متابعت و حسن طاعت این حکمه این حکمه به وجود متابعت و حسن طاعت من گفتم حکمه قدرانه این حکمه عقلی بیست اما مراد از اغلاق چیز دیگه ایست که بردیم میشونتون حجوب طاعت رو برده وجود متابعت به قرد عقلی نیست، اما وجود طاعت چرا؟ میشونتونتون یکی گرسیم وجود متابعت و حسن طاعت لعن مرژه ردی اگر گفت به قرد عمل نکنم که انما اجازه داره در محصی هم آنگاه بگن اگر شما یقین دارین که گوشت خرگوشی هایده اگر که به برده درمه همه هم یعنی چی؟ این گوش رو این جواب با اون چه سال اجازه بده ترخیص بده در خوردن گوشت خروش با که خودش برگوش بین که هرامه بشون نظر موایش به که چون حکم عقل تنجیزی بود حالا اگر بخواد اجازه بده و ترخیص بکنه یعنی ترخیص در محص و هر که تاعن و مثل او کما ترام مایه با انور وجدان لجن رو قبول میکنه و قابل تصدیق نمیکنه بعد از اینکه یقین به خلاف تصدیق داره چطور ممکن است برعض عمل ندونه در حالی که یقین داره به وضوحه که گوشت خوک حرام چطور شاره میگه حرام نمیدونه اون با اون یقینش منافق در لکونی هی البته اینجا این هست منت تناقضی نظر قاطع تناقض به در حال قاطع تناقض رهن نمیه کن کدالک و حسب الواقع شو موطنی قطع چشت باقع شو را مولد کرد پس تمام نقصه بودن در مرموهادی ها یک این حکم عمل تنجیزی است با وجود این هویت‌هایی که اگر گفت و اصلا از از عمل نکن معذیه به تناقض میشه یا تضاد در معنیش میشه بله حالا این یک مطلب یا آشاش شو مطلبی که در اینجا قبل از چون ایشون بعد علایو خواست بعدم فرمیدن حالا قابلتیات نیست به مسئله زن, زن در بنابراین صداق رو ایشون تحلیلی می کنن. دیگه من نبو کنم ربارشون بله بله نهم لقیل لذابیشون میگه اگر در مقام در حوضیت قبل قیل به تعلیقی یا توبکش عقل به وجوب مطابق کما قیل به حلم اجماعی میشه معنی لیکن وشگاه هم میشون که این وقت تعلیلی نیست، فقط تعلیلی است. اصلا بزرگاه ساعت شما در این جا در چه چی در کلمات مرموم به محفظ قرابی تنجا کرد یکی این مسئله هست که اون رو موجود به مطابع هست آیا حسن سال اون رو مربوط میشه به همون در تمنی راجع به اداره جامعه اما حسین اون جوه مصابره هم چه تو؟ آقا این هم حکم حمل دو جو این یه حکم حمل این این اگر شهای اقامت دو شما به قبلیت حمل این معناش که بیشان فرمیدن یا چیز و اصولاً قبل از این دومده اون که باید در این یاروش بحث بشه این است که آیا در مرحله کنتیوز که مقدر باقیدشان احضر و گفت بکنه و تقسیل اراده در روزون ساعت؟ آیا این مرحله کنتیوز فقط از ادراکات اولیست و فرد اون ادراک یا از این مرحله کاری در نداره یا به عبارت سال زب آن و مقنه و مانگوزار می توی مرحله تنجز دستگاهی رو کننن ظاهر هم کارو می توانید تنجیر نیست ظاهرش نیست که این مرحله فقط در اشتگاه رو آیا توی مرحله تنجز فقط هر رو قادم کودار کنشون رو بیاد بگیم؟ بیار بیار شما همشنا که فکاری رو از ما میگیریم طریقه پنجز ما ها بر از از بار پیاس و, و استحسان و اجماع و هدین حرفا لاده نشین ولو فکر اصلا نقطی رازه به فتح و زرکنه این ها نیست آجا ما... با باید منازه نه از کولو ما نه چه ام در جایی که کوکی اینجا هم اگر ثابت بشه بکنه هم داشته چون مقام امتصاده این مقام تند جزده چرا اما اگر ثابت شد که این بکنه اول نیست این دنهای اوحلاست و این قابل تقییل به شرایط اول میشه اونم دیگه قاعدی ملازمه موضوع پیدا نمیکنه اون قاعدی ملازمه روایدی که نیست بناید بکنه بکنه خودش یک قاعدی دیگه باید با اصفاد با میشه در پس بنابراین اون چیه که با مرور محضبه عراقی آن آنجای وقته ایشون مفروض گرسه که حکم عقل هست و مفروض هم که این حکم عقل تنجیزیه قبل از باید با باید صحبت کرد که آیا این هستن حکم عقل در خب اراد بهیدن بلوز و محضبه هستن در این که انسان این فقط هفته و هفته و هفته و هفته و هفته و هفته و و هفته این یک ظاویه بخش یک ظاویه بخش که میشه اصلا مطلع را عرض کرد و این را که اشاره را سه گلند آیا اون مسئله گوجی او و تنکیوست آیا بسودم چی این مسئله به خود این مسئله میشه به حسب فهم و یا به تحریدشان به این دا مدار حالات ادراکی مکلل برای بگیر یه برای یه برای زن بگیر شد حالات ادراکی باشه یعنی هیچ مئیار یا ای نباشه از یک مثلا بر از خود حاکم از خود از اون دانستان از خود دانستان از خود شهردار چه این چیزی رو یکی خط شیدار که از این اون میان یکی خط شیدار که از بگیم این میان اصلا چی این برنامه همه سبتم باقرداری؟ شهردار که باید همه سبتم بزنگی میشون آه آه آه آه اصولا تنجز رو تابع حالات ادراکی افراد قرار بگیم مثلا این رو بیاییم که حالات ادراکی افراد تصیر آیا این کفایت میکنه این که دیگر برست زایی استفان این است که آیا در شما خودشما که بزیاد یا, یا موضوعی نه یا در قبل طریبی و موضوعی اینه اگر برس ما واقعا هیچ تقییر نداره که اگر برس تغییری این ظابطه اگر برس ما هیچ تصیر نداره مثال باقردی به که اینا سالمه قردی شما تصیر نداره آقای واقعه سالمه در من در در اما گایی وقت به شما میگه از نانی که میدانی سالمه مصرف بکن از نانی که خوششتشتاریش این قضا داره مصرف بکن و شما فرسشت روشید سالمه اون درده نوره اونجا باید نقطه باشه که تحت... یعنی فرس شما گایی وقت موضوعی بکنی میشه یعنی مستیبی که اجتنام بکن یا نکن خود فرس هم لحاظ کرده پس بحثی که ارمان در اونجا زاویه رسته به حکم تنجیزی عقله این حکم تنجیزی عقل در رو ما قبول این حکم تنجیزی عقل رو قطع تریجی می یا به قطع ما مخصوصان هر که این حکم تنجیزی هر بود شما هر شده که این گوشت هر حرامه شد حالا از هر سببی بود اون بحثی که هست این حکم تنجیزی هر سرکه در همجز آدم این حکم تنجیزی با قبلنه به قبل موضوعی برخورد یعنی شما بزرز رو و از طرف تقسیم رو انجام بودید یه تنجز بداید لیکن در صورتی که از اصباب معلی همه از طریق معلی داره باشه پس اون نوعات اشکاله اختلاف در در محققه عراقی جوابات متعددیست ایشون تمام جهه هست رو تنجیزی و تحقیقی دیگه هیچ نقطه ای رو مطبع نزدن ایشان ایشان بگه اگر گفتیم خب محق تر یه ایست میتونه محق بکنه اون از ایشان خواسته به همون قاعده همیشه یک خودشون مختلف در محاصف میشن ایشان بگه برده یا گفتن اگر به نقصی در این که نمیشه از فرط محق میشن شما به خضا در خماغاز یا بعد از سالش که خضا در چون مثلا مدیو دارم بوشت فرگوش هرام دوگه نه همه نکانیه جایزه ترخیز می کنه دو با بعد ایشون میز زون این میز مشکه چون اگر بحث تناقض باشه خیلی از ها به های اگر ما را در تناقض تناقض با حکم اولی باشه تو تناغذ نداره حکم شریعه ازالیشون خورمت بهش بعد از قرد آمد که جایی جایی که تناغذ مشکل مشکل حکم تعلیقی و تنجزیه. اگر حکم تعلیقی باشه مشکل شون یک حکمی داره در این قبل خردوش شما یک حکمان بعد بعد شماست این اختلاف رازو بگران هنشکر ندارشون هنشکر ایشون میگه که این امکان محاقه داره ترخیصی. این ترخیص شارع من به حکم از به سابقه که علاقه دویشون اینه قبلت به شما بعد از برد آمد ترخیص ترخیص این نمو مناقضه و لا بین بعد که بوده من این که با که با با و تغییبی بودن یکتر تو رو تو بیندن بکنه و تو منابضت تو و تضافتو بین تناقض برداشته میشه چرا؟ چون در یه دوشت نیستن یه قبل از سرده یه بکن ببرد از شد من الان سوگه شده منتونه ما هستم تصور آزام که این چیم اون آقایی که میده تنافض رازه میاد چون قرط رو تلیفیه سر رو من صحبتش از آن هر اگر قرط تلیفیه سر باشه رو سو درست نمی که قرط سر رو سو درست نمی میکنه؟ بگی یک هفت ما رو خرگوش فرگوش خب در خطه در اگرش یک چه این که ما به مرمومات اشغال بگنه تنگاهواز رازه مورده باید یک طریقی اصلا تنجیزی بودن باشه اصلا یه حکم آمان گرفتیم محضر هست بعد که تنابا چون سر که علم سر گرفتیم اگر علم سر باشه رسی کنسته میشه که در یک تقریبی باشه یک رسی قبل یک قبل یک حکمی که یک رسی که یک در یک این باقرد اگه هست تحجیم ترگوشه در تا قبلش فرق نمی معنی تحجیم تحجیم تحجیم اگر نساهم این مذر به خیلی واضح این مذرم کاملا رفت به تحجیم چند نداره این بس تحجیم اینه که آیا مگر اینکه ایشون بگه وقتی بخصیم تحجیم یعنی شد موجود به قبل تحلیل و تنجیف. مگر این تحلیل و تنجیف در عوادیشان عواضو خوره و کار تحلیل جامعتری بشه. اگه این کوشی دوستین هر بار. چند تا موزو دریان هم که در کیشانامو دارد میشیم و سری دروغو جواب و دروغ تر. لعنتی بعثال ما که بس که این می‌بوه از در روسی موضوع اون بو که این میشه نمکی از واقعیت و ترین مسئله دیمه این همهی در رو شده که شاید این شما در موضوعی شده هسته کل دوبون مسئله اشتغالش همی جا هسته ببینید شما امرو موضوعی بگیر یا طبیعت یه امرو سرگیده طبیعت یعنی امرو موضوعی شما بیدایمه چنده رو ندازه که هیچ نقصه این نداره به میگو که روش باید پس همیشه فرش رزه بود اگر فرش رزه شد شما بیداتیم که گوش ترگوی بوده گوش از شما داره خب درست ببین قبل این حرمت هست بعد گفت جایزه شاده گفت جایزه این با, این جا جواب با اون هر دو نه میشه میشه میشه خرد میشه ایشون دو رو سویه بزن شما خدمت و سریعی دردیم کی این میشه که قرد باشه موضوعی مراد آزیانی باشه مراد جدی من شما تنجیبی گردتن فرم میشه مرمونایی هم طریقی گرفته مرموشه هم گرفته من از هفتر مرسی اشاره کردم در کلمات اینها قصد طریقی طرفه و نه نایدیم یک نمازه همه آزاده میاد شما قصد داریدن گوست خربوش همان شاره دیگه جایی دید چون این طریقیتش مثل این ذاتشه و ذاتیشه و اگر ذاتش شد پس اینجا خرید صرفه شما مشکل رو چهارا مینی در شریعه چطور که شریعه بگی شده؟ بله اگر قطعه سو موضوعی شدونم چه بشه؟ میگه اگه قطعه بلهاز صفت این صفت قطعه کسی رو کنه این مشکل نده اونجا قطعه موضوعیه ولی من صابتا رو اختلاف اساسی اختلاف اصاسی به این دن ولی اون مطلب مرموهای ظاهره در ایوارات نیامده اختلاف واقعی در حقیقت نقطه اینه که ای که در مقام امتصال هست و در مقام تنجزه تکلیف هست این به نفر یا به نموضوعی اگر این و این رو یا اوهلا ما به ما یه و به نظر است. این نقطه اصلاف ما واقعای هم نمیشه؟, نمیشه. این تناب... چون که ببینید من اینشالا بعد توضیح میدم شما بس یه قرص کنید چند که ای ایک سفر معایم. اگر خود جیه اصلافات این سفر در هیچ در زن تو با خود پیلون میشه. نمیخواد چون این حجیت تابعی نیست فرد. دو در وقت کاشقیت هم است پس سه انتشافه واقعا هم یک نکاتی که در خط وجود داره. از این که بعد این ها خطیقیت رو میموند چیزهایی در زاد در که شما خط بیراندید. خجیه تو اقالایی هم صاحبته. اشکار داره ما اشکاری که اجمالت میشه اقلاق بعد انسان موجهد. این نماز کلام منشه این چیه؟ چون کاشف تامه حجیت نایی خواهی این رو یه سر حجیت شن کاشفیه کشفش هم و این کشف هم و از آفت دکت چون ایشون از این راه وارد میشه خب چون ایشون از این راه وارد میشه طبیعه در درست زن وقتی میخواد زن را حجت بکنه چهار چیار میگه اون کشف ناغذش تمام میشه ما چی میگیم بی مرمونابیدی اون سچه بگیم اصلا از این ظاویر بارشون توی زردن جوارشون همون زاویه پیگیری کن این بسته ها که ما میگه برد دارم اصولی ها کلماتشون منتجه در چطوری باقر بود یعنی چون ایشان نقطه یک فندیه در بودیه از اون کاشفیت بره اون کاشفیت بود تغییر رو کاشفیت که حجیت داره چون طرز کاشفیت هر جا که کشف نابود باشه حجیت اون از بین می کشه 50 درصد کرده هشتاد درصد 60 درصد کرده 90 درصد اینجا اون دید موارد مرغونایی اما اگر همین گفتین نه اصلا هجیت هم خاصی ندارن این حجیت مربوط نیست به خود اثر و صفات و به سرریشیا در نقش ماجاری مثلا سفر هر خارج این که واقع است سکون نفس داره ایمان رویت واقع هست به خاطر اینها خجیت نه البته دقت کنید به خاطر یک امر خارج است حقیقت در ما این نقطه حلو شیشه در پیدا می‌کنه آیا حجیت به خاطر یک نقطه داخلی درست آمده؟ یا حجیت به خاطر یک نقطه خارجی درست؟ اون نقطه خارجی درست چی بوده؟ اون سیره اوهلا روزه گفته اگر بخش نه یادند اون جانعه به من این وقت نه به کاشفیت داده؟ نه به شفتیت داده؟ زرافت کار اگر ما آمدیم حجیت و این زابیدی توی خبر واردی از همی ذاقه که اسمشو گذاشتیم مثلت تثیر حفظ جامعه لحوان اکمه اسمش اسمشو گذاشتیم مثلت تثیر اگر زنم خود شد با خاطر مثلت تثیر چون خود قرد هم با خاطر مثلت تثیر بود این در برشتی این که ما آزی و منجید و این نه. به نظر ما هنده اونی که در و اصولی در هم میتونه حل نفسته بکنه اینه شما خودجیه از اون چی نقطه بره خط چون خاشوگیتی داره خاشوگیتی داره می داره سلام نا پس خودجیه یکی میگه چون صفت خاصی خب درزم اون صفت میسه داره نداره یکی میگه با خاطر این کشاف یکی تا میگه نه حسین به حجیت نداریم حجیت به خاطر یک نقطه خارج از خیلی تا که خیلی تا که یعنی اوقت ها آنم که اگر به همون شده مثلا که یعنی رو قلب بذاریم باید می روی می روی می روی می این اسفش مختلفت تسلیل یا یک نظام اگر نقطه این شد پس حجیت به خسارت داخلی بر نمیگرده حجیت یک قبیده اجتماعی برمیگرده و اگر این شد حبروارد هم حجیتش رو من در ترکیب برمیگرده هم جامان صحبان از حجیت بکنیم باید برگرده یک عمر اجتماعی و نظام محمول مستاد میپرمونه حجیت حبرستقه اغلاهیه جواب ایشان روشن شد چون اگر دو جیهت مخواد اغلایی باشی بقیمون لزوم اختلال نظام و مشکلات و اصفاها هر جنا خب در خبر از عمل نکنه تحقیق کن چه مشکل داری؟ زرافت نفیه استاد که دو جیهت خبر از دقیقه اغلایی اون دو جیهت که به تفسیر ما درجه ها که میشه که اگر نواشه اختلاف رازه مشکلات رازه میاد تختیق allah گفته این در خبر سراغ عمل نکن که در خبر سراغی که فقط به خاطر بساخت باشه چون گویی خبر سراغ بر ما علم نیست در ما ازش نمی‌دونیم جای بستیم اون جایی که ایم و ازش در اون جا به خرابی مراجعه کن تا ازش نمی‌دونیم چه مشکلی داره خبر نداره دنبال دیگر تصور اتاق این از اول موقع خوش نموزد خوشان در مثالی هوژیا و هوژیا با روشن بودن رفت این حجیت را با در تا بکنیم پس مرموم آزیار مرموم آیمانی هر کدوم به تحلیل با بعدی اینا منشه حجیت و تریجیت هر که می دونن مرموم شهی خمساری هم رو لحنمون به واقع چه که مسابقه اگر معانی و کلمات دیگری داره که شاید یه این طور پیشنه، در در هستند می‌خوام همینطور پیش بریم که اینو یه اشارات سریعی بکنیم و رد بشیم ان در درس‌ها اینکه بیشتر کلمات معارف انسانی اون تعریف بشیم بعد حالا آخر اون چیزی که می‌گم یواش مطلب خود ما روشنگر حالا اون مطلب تحقیق مطلب من در خلال این مناقشات سعی کنیم هر لحظه بکشیم کامل کامل ان شاء بشه و الله علیه